هایی به سوی خدا و بازارتارز مرا از خواب سباکی بیدار کرد. سپس به طرف میز رفته روی یکی از صندلی‌ها نشست و به عادت معمول یک پایش را روی دیگری انداخت. لبخند ملایمی بر لب، آغاز به سخن گفتن کرد. "به بازارتارز امشب میل دارم درباره هایی به سوی خدا صحبت کنم. پال من به هوش و آماده‌ام. ربازارتارز. امروز آدمی در شرف عظیمترین تحولی قرار دارد که در تاریخ معنوی بشر دیده شده است. تمدن هم در آستانه یک تغییر جهانی است. لکن این تغییر در جهت منافع نوع بشر است. این تحول باعث باز شدن روزنه هایی به سوی خدا در مقیاسی آنچنان هنگفت خواهد شد که بعید است آدمی آن را شناسایی کرده یا تشخیص دهد. در گذشته بشر هرگز قادر به شناسایی این نوع تحولات نبوده است کل تمدن بشری از دیدگاه آن قولهای عظیم معنوی که قدم بر سطح این سیاره گذاشته و نور خود را از طریق روزنه‌هایی که هر یک به سوی خدا تأمین میکردند در این جهان گستردند بیش از بازیچه این نیست حالا تصور میکنی این روزنه‌ها به سوی خدا چه باشند پاسخ مستقیم به این سوال امکان پذیر نیست بنابراین مجبوریم ابتدا از چشمنداز اقلانی به بررسیان به پردازیم فردی آدمی همیشه سحنه نبرده نیروهای انصاری خوب و بد مثبت و منفی نیروهای دوگانهی که میباید نبرد خیش را به پایان برسانند بوده است میتوانیم از ابتدای تاریخ تمدن بشر رد گروهی را که به درگیری این نبرد در وجود آدمی پی بردند و تحت نام کاهلین شمنها و کشیشان خیش را به عنوان قصری به نام روحانیت من جوامع بشری حاکم نمودند بیابیم هدف این مقامات کنترل اذهان توده ها و حاکمیت بر امور معنوی و اخلاقی نوع بشر بوده است احکام و مقررات وضع شدند ولیکن به همراه آنها این قشرهای ظاهراً روحانی مانند برهمنهای هند شنیترین ترین را به مردم جوامع خویش اعمال نمودند کلیسای دوران اولیه به این ترتیب به وجود آمد که رومی ها به حکم مسلحت مسیحیت را به درون سیستم پانتیسم خود جذب نبودند. مردم پسند بودن شیوه مسیحیت به حکومت روم امکان میداد کنترل توده های مردمی را در سراسر امپراتوری عظیم گدشه خود همچنان در دست داشته باشند اکنون اگر بخواهم به تو بگویم که معنای این همه چیست لازم است بدانی که از بسن هر مذهبی نوعی بازنگری در فلسفه مورد آموزش رشد می کند که برای مردم جوهره حقیقی رفیع ترین آموزش های الهی را به ارمغان می آورد وجوه ارفانی و پنهان مذاهب به توده های مردم دوران نخستین تمدن آموزش داده نمیشد. آن هنگام که مذهب فلسفه حاکم بر جامعه بود مانند دوران ابتدایی ظهور ادیان در هند وظیفه‌اش تعیین معیارهای اجتماعی برای مردم بود قوانینی مانند احکام مانو که گاو را مقدس شمرد تا مردم فقیر به کشتار دام خود دست بزنند نه توانند سرمایه زندگی همسایگان خیش را حلاک کنند بیان که مورد تنبیه واقع شوند. این مقامات در مقابل ازهان ابتدایی مردم بسیار خردمندانه تدبیر کرده بودند زیرا هر خانواده هندو معمولا یک گاو داشت که هرچند در مقیاسی بسیار محدود اما به هر حال زامن بقای آنها بود. از بسنی یک چونین آداب و تشریفاتی که به منظور مسهور داشتن و کنترل کردن اذهان توده ها طراحی شده بود، آموزش وجوه اسراری و فلسفه های عرفانی رشد کرد که از متن آموزش‌های مذهبی استخراج شده بود. اینها به مکاتب اسرار مشهور شدند، اما چرا این زیرا در این گروههایی که تحت راهنمودهای یک استاد یا معلم گرد می حقایق معنوی و رازهای طبیعت فاش می شد. از میان مذاهب بزرگ جهان، مکاتب عظیم اسرار جهان امروز زاییده شدند، هر مکتب اسراری رهبر معنوی خود را دارد که یا پای گذار آن است یا مسئولیت رشد آن را به عهده دارد. راه همیشه یکی بوده است. بودا یکی از کسان بود که در جستجوی پاسخ به پرسشها و مشکلات معنوی خود برآمد. ولیکن چندان در فکر تأسیس یک فلسفه اسراری نبود که هندوئیسم را ترمیم و بازسازی نماید و یا سلسله نظامی به وجود بیاورد که گروهها و اساتیدش یکی پس از دیگری ردای معنوی استاد پیشین را وارث شوند هر یک از مکاتب فلسفه مذهبی در جهان سلسله‌ای از گروهها یا اساتید را دارد که وظیفه آنها ارائه آموزش ها به مردم از طریق روشنبینی خودشان میباشد هر استادی ردای معنوی را از استاد پیشین تحویل میگیرد تجربیات او در جهانهای معنوی معیاری است که با آن استاد پیشین او را برای جانشینی خویش برمیگزیند مثلا دالایلاماهای تبت از هنگام تولد شناسایی شده می‌باشند. عیسی هم از هنگام تولد توسط پیران مق که می نور معنوی او را با چشمان خود نظاره کنند مورد شناسایی واقع شد یک خط از استادان معنوی پس از وی قدم در جای پای او گذاشتند تا مسیحیت در جهان تحسیز گشت برای اینکه که دریاوی چگونه دست خدا نوع بشر را در هر مقطعی از تمدن جهانی هدایت میکند تاریخ عدیان را مطالعه کن بهترین مثال آن انجیل است که پیامبرانش یک سلسله معین از اساتید بزرگ بودند هر مکتبی تحت یکی از سشاخه عمده از اسرار زیر مطرح می شود نخست اطرار خوشیدی، دوم اسرار قمری سوم اسرار طبیعی البته یک شاخه دیگر نیز وجود دارد که اسرار کیهانی می باشد تو در یکی از این مکاتب و توسط آین هایی که منحصر به آن می باشد مورد پذیرش واقع شده ای با مجدد یکی از زرگرمسل های باستانی که میگوید آب سطح خود را می میشود گفت که طبیعت برای هر جستجوگری راهی تعبیه می کند که استاد خود را بیابد او کسی خواهد بود که به بهترین نحو وی را در مکتب اسراری که مناسب با طبیعت و وضعیت آگاهی وی باشد، مورد آموزش قرار خواهد داد. سه مکتب نخست مراحل آمادگی را برای وارد شدن به مدرسه عظیم اسرار کیهانی میسر می‌ساختند. اما این بدان معنا نیست که معلمین آنها شایستگی کمتری را در مقایسه با اساتید مکاتب اسرار کیهانی دارا باشند. این چنین نیست، بلکه همگی آنها رفیعترین آموزش‌ها و فلسفه‌های خداشناسی را تعلیم می‌دهند و آموزش دهندگان آنها سفیرانی هستند که می‌توانند جوینده را در مقابل بزرگترین مشکلاتی که در زندگی معنوی خود با آنها مواجه می‌شود به بهترین نحو ممکن یاری دهند هیچ یک از آموزش‌های مکاتب اسرار اصولی نیستند به این معنا که همانند آموزش‌های ادیان اصولی با ضوابط معین و تغییر نپذیر سر و ندارند اما به هر حال قانون بزرگ الهی بر این امر ناظر است که هر یک را در همان جایگاه و گوشه منحصر به فردی قرار دهد که در آن منافع معنوی وی در آن برهه مشخص زمانی مد نظر واقع می شوند. هنگامی که مرید آماده عبور به مراتب بالاتر اسرار هوشیاری فلکی شود خدا او را به سوی هدایت می کند که بتواند به مدرسه و مکتب لازم وارد شده و بالاترین هدایت های معنوی مورد نیاز خود را در آنجا بیابد. پال اما این برای من گیج کننده است پس آموزش های اکنکار به کدام یک از این نظام های مکاتب اصرار تعلق دارد زبازار تارز. هنگامی که فردی تمامی مکاتب اسرار را پشت سر گذاشته و از میان وصل به همه حلقههای مکاتب جهانهای تهدانی عبور کرده باشد، قدم بعدی وی، وارد شدن به بالاترین های معنوی در این کیهان است که امروزه اکنکار نام نهاده شده است. این آموزشها تنها توسط ماهانتا، استاد حق در قید حیات ارائه می شوند تو لازم است که فهم کنی بدانی و آنگاه اعتقاد ببرسید